بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین و اهله و صحبیه اجمعین اما بعد دور مرور میکنیم که درس گذشته بحث فطرت و معانی فطرت و اتجاهات فکری که در بحث فطرت هست ما سه تا ادله از قران رو داشتیم هفته گذشته در بحث مسندهای بعضی از علما در اینکه فطرت به معنای یک چیز خالی هست در نفس انسان که یک گرایش خالی یعنی یک چیزی که انسان، یک بی در نفس انسان نه میلی به گفت دارد نه میلی به شرک دارد که خود فطرت اساسش به معنی لغبیش همون خرکت هست و مقصد در احادیث آلیادم همون خلقه خلقی که در انسان هست مجرد خلق اولین عدلشون این بود که گفتن که در آیه قرآنی اومده ولا فاقم وجهك للذين حنيفا فطر الله التي فطر الناس عليها لا سبيل للخلافات تؤخر اي ما دارين بحث ما اینه که اینها در اولین انتشارش تفهیم گذاشته داشتی گفتن ما این آیه را این آیه که در آیه از اینجا شروع بیشته خط مجکل دین حنیفه فطرت الله التي اللہی خطب النصر علیه اینا میگن این فطرتی که در این آیه اومده به عنوان یک رکیزه فکری که میل و گرایشی به اسلام دارد این در نظر یک چیز نفسانی است در نفس انسان که انسان را گرایش بده به حق اونها این مسئله رو قبول دارم میگن نه انسان بی گرایش هست هیچ گرایش درش نیست نه به سوی خرق نه یک چیز خالی هست در نفس ایسان خلقی خالی مقصد از خلقه در این آیات و دیگر آیات همش به معنی مجرد خلقه خب چرا مجرد خلقه؟ گفتن که اولا در قرآن خطرت و اصل فتور و فاطر به معنای خلق آمده مثلا ما داریم از سوری فاطر آیه اول الحمدلالله فاطر السماوات یعنی خالق خالق السماوات و ها ما ردگارش بر اینها دادیم و گفتیم که اولا ما این کار نداریم که فترت معنای لغویش میاد در لغت بله ما قبول داریم لیکن در جایی که مفهوم شرعی داشته باشه باید طبق شرق تفهیم بشه باید طبق شرق تفهیم بشه اینجا درسته که به معنای لغویش اومده ولی در... چون... چون اصل استنادش به دین نیست به اعتقاد نیست به مرام نیست اصلش آسمون هاست به وقت بخاطر همین معنای لغویش اومده مثل کلمه ایمان که ما قبلا بحثش کردیم. اما در اینجا نه در اینجا بخص دین و تدیون است فعق موجه هنکه لدین یک چیز مسئله غیبی هست فطرت بر یک مسئله غیبی دوبا من ما گفتیم اگر قرار بود که فطرت در این چینین آیاتی و احادیث خسن احادیث و آیاتی که در این باب اومده اگر قرار باشه یک خلقت خالی باشه خالی انسان خالی از ذهن که هیچ گرایش به هیچ اعتقاد مرا می ندارد اگر قرار باشه اینطوری باشه پس در این آیه نباید خداوند فطرت را از باب مدش می اومده dat ince ma mi vidin. Khodavan ba yek durud va yek sana va madhi bahs Ibrahim mikuna ta miyad khitab be rasol azan fa'aq muwajjaha liddin al-habiba fitrat Allah alladhi fatara anasa alayha la tabdil al-khaltata. Mustaqim ridin bash un din ke fitrati fitrati hast ke tabdil avaz nemishe ta اگر قرار،, اگر قرار بود خالی باشه یعنی فطرت چیزی خلق عادی باشه پس نباید خداوند این این من فطرت الله خداوند نمیگفت اینجا داره بیگه فطرت الله یعنی فطرتی که از طرف خداوند التي فطرت الناس علیه هده تبیل الله خلق درسته؟ یعنی بحث نایمده که اینجا یک طرفی باشه یا خالی بطور رو هم تو خود شما خلقت خالی باشه نه اینجا از قبیله مکر آمده نه از قبیله زن و خداوند می‌خواد یک چیزی را بررسونیم و اونم اینکه این فطرت یک چیز طبیعی و عادی نیست یک چیز طبیعی نیست یک دینی للدين حنیفه فطره فطره الله التي فطر الناس بحث تدین این اولین دلیل براد بر اونها دومین من بطون امهاتکم لَا تَعْهُونَ شَيْعَ گفتن که طفلی که به دنیا میاد چیزی نمیدونه ما دوتا رکیزه داشتیم یعنی دو تا اساس اختلاف ما با کسانی که گفتن انسان هیچی نمیدونه و هیچ گراهیشی نداره ما دو تا اختلاف با اخساسی داریم اولا اختلافمون در این که علم دونه و علمه یک علمه هایی هست فطری و یک علمه هایی هست اتصابی درسته؟ ما گفتیم بچه که تفلی که دنیا میاد سینه مادر را می مکی درسته؟ می مکد و شیر را می نوشد که بهش یاد داد؟ علم دیگه نوشیدن علم تجربه هست تفشونه تجربه کرد اولا پس باید بین علم فطری و علم اقتصابی باید فرق بودی این اولین اساس یعنی اینجا وقتی که نف شده لا تعلمون شيئا والله خذكم بمطر اماتكم لا تعلمون شيئا ان علمك نف شده یک علم خاصی هست نه تمام علمها چه بخود انفه بخود این آیه این مسئله رو توضیح میده چون تفلیقی در دنیا میاد غیر ممکنه که هیچ علمی نداشته باشه یک علم هایی رو خدا به اشدته و اونم بلاخص مکیدن تایید جمع کردیم با یک آیه دیگه که گفتیم این چنین آیه نفی علم علم شرعی علم اقتصادی شرعی گفتیم دلیل امینه که خود ما در قرآن میگه خطاب مشرکین اولو کان ابائهم لا يعلمون شی اولو کان ابائهم به درسی که پدرانشون چی چیزی نمیدونن آیه اون نجاری میگه تجارت نمیدونن اولو کان ابائهم میگه تو که پدران چیزی نمیدونن پس نفس نفس چه نمیدونه علمش علم شاکی درست نیست که به دنیا میاد بچه که به دنیا میاد علم شرعی نداره نماز رو نمیدونه شیه نمیدونه روزه رو نمیدونه شیه شکی درش نیست لیکه میلو گرایش به سوی اسلام آیا این هم در قفلیست خیلی این هست و آیا تحایی سعیدش میکنه و این هم دلیل بر شما نیست چون نفی این شیخ خصوصی یک علمی هست به دلیل خود این آیه و عدله دیگری که در این با بومده من رکیزه دارم بگم، خلاصه درسه بزرشه دارم میگم که ترکیزتون روی اساس اختلاق ما باشه. اون نقطه اساسی. فهمیدین، این دو جا که واضحه. میرین به سوم میادله. این نما توجزه و نما کنتم تعملون. درسته؟ این نما توجزه و گفتن که ما جزامون بر اساس عملمون هست. جزامون بر اساس عملمون هست. پس کسی که عملی نداره پس کسی که عملی نداره نباید توبیخ بشه کسی که عملی نداره نباید توبیخ بشه خصوصا الان بخص اجماعاتی که نرک کردن در دفعه اصاس و مسئله دیگه که ما در استقلالشون به این آید الان طبق فهم اونها که کسی که به وقت عمل نرست مثل یک طبق این شخص نباید مجازات بشه و نباید حساب و کتاب بشه و اصلا هم کرده و ما کنم, کنم معدلیم حتی نباید رسولان ما گفتیم بازم اینجا اساس اشتباهشون در چی هست اساس اشتباهشون بازم در عدم فرق بین علم اکتسابی و علم فطری این اساس اساس مشکلشون اینا گفتن که ما مجازت میشیم بر اساس عمل نبرای اساس حطرت ما كنت بتعمله قلت تفت... ما ما ما ما فاتق عليه ما كنت بتعمله وان جيت لك اعمال بيكون مجازات مش بل اساسا فتا اذا خدرت منو جرائشه حاس بس انسان في مقابل عدمه بين الدرايش بين الدرايش بتصير في بازار بس بتجازا باش درس طيب ما شي قلت ما شي مني ما بيجي بعد اول فرق بزاري بين علم اكتسابي وعلم فكري ام بلشي ان الدنيا ميات مکلم نیست، پدر و مادر گروه رایش میکنند که در حدیث بعدی میاد اصطداولشون رو جوابمون خواهد، خواهیم داد پدر یهونیش میکنه، پدر نسبه نیش میکنه انحراف بهش میدن، درسته؟ به خاطر همینی که خداوت وقتی که انسان مکلف شد، بعد از اون انسان را مجازات میکنه بعد از اون و چه موقع مجازات میکنه؟ وقتی که پیانبران آخر استاده باشه یعنی تا وقتی که دلالت دلالت, دلالت یا هدایت از طرف خدا من نیومده باشه کن اشخاص را نجات و پیانبران فرزاده نشد مثلا و ما کن معدنمین حتی نبذر از در اینجا چون بحث کسبی هست انسان بر اساس تکلیف اون چیزی که کسبی کنند و زکلی بهش پاداش به خاطر همین گفتیم که چی؟ خاطر همین گفتیم که اینجا اینجا در این بحث و مجازات مقصد عمل اقتصابی هست که بر اساس اون انسان یا توبیخ میشه یا پاداش میبینه حالا بحث طولانی هست نیست و والا بحث خود اتبار خصوصا در حدیث بعدی شاید یکم واضح تر و سریح ما بتونیم جواب بدیم ببخش اطلاع بحث خودتون میبینید خیلی گره و پیچ داره که ما باید این گره و پیچ ها رو باز بگوییم حدیث ما من مولود ایلا یولد علالفتره هیچ مولودی نیست مگر که روی فطرت بدونیام بیاد فباوا ولی پدر و مادر یو هودانی یو نصرانی یو مجوسیان کما تنتج البهیمه بهیمه الجماعه هست تو حسنه و قال صلی الله علیه و سلم درست گفتن گفتن هیچ کسی نیست مگر روی فطرت اخر میشه پدر یهودیش میکنه میکنه مجوسیش میکنه همون که حیوان سالمی حیوان سالمی را به دنیا میاره درسته حیوان های سالم حیوان سالمی دنیا میبرن میارن آیا میبینید که گوش بریده درش باشه گوش بریده یا چشم مثلا چشم،, چشم مثلا چشمش از کاسه بیرن ورده باشه هست نیست حیوان سالم تو حیوان سالم اگر اختلاف ژنتیکی درش نباشه اگر نبیدونم ماده شیمیایی مادر مصرف نکرده باشه یا مثلا بهش داده نشه اون فرضا که می دنیا میاد سالم اگر واکرش چیزی ایجاد بشه سالمه نه گوشش بریده بحث برشه جدا بریده نشده یعنی کسی نمی در چه مادر ماده در چه حال مادر بکنه گوش رو بگیره چطور شما قصیرم می‌کشه درستون اون اختلال و خللی هست در اساس جسمی خب اینا چی گفتن گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کماتن تو جل بهیمه بهیمه جمعا همون که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 اضافه کردن گفته که همونطور که کفر رو نمیدوند ایمان رو هم نمیدوند یعنی چیزی در نفسش شناخت الله معرفت فطری الله نیست اساس فطرت یعنی شناخت الله در نفسش یا گرایشه به الله در اساس نهادین نفسی قلبیشو انکار میکنن میکن چون حیوانات سالمن پس این دلیلی هست بر اینکه بر اینکه اون انسانی که به دنیا میاد هیچ گرا ملو گرایشی نداره و گفتن اگر قرار باشه که بچه ها وقتی که به دنیا میان گرایش به سوی ایمان داشته باشن پس باید اول مسلمان بشن بعد از اسلامشو دوباره کافر بشن و اگر خواستن بعد, بعد دوباره به اسلام برگردن اول باید اسلام ایجاد بشه شهادت رو بگن ما میبینوی که نه مشرکین هیچ کدوم شهادت رو نمیگن جواب و پاسد ما بر این شبهاتشو فهمیده شبهاتشو سالمی میگن لازمی این سالم اینکه نه کفر و نه ایمان داشته باشه نه کفر و نه ایمان داشته باشه سالمه و گفتن که اگر قرار بود بچه ها چیزی میفهمیدن پس باید اون بچه مسلمان می شد بعد کافر میشه پس لذا اون بچه هیچی نمیدونه و هیچی نداره جواب ما اولن. بچههایی که به دنیا میاد بچههایی که به دنیا میاد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 فطرت خودشون میگن یه قدرتی از در انسان حالا این قدرت چنون قدرتی است میل به حق یا نحق؟ میگن در انسان قدرت هست فطرت قدرته خب ببخشید این قدرت از خودش ارادهی دارد ندارد گرایشی دارد ندارد حالا اینجا خودشون درش میمونند اگر گفتن که قدرتی بر تشخیص حق هست پس به حق به حرف ما رسیدن به حرف ما رسیدن آخر اگر قدرتی هست بر تشخیص حق پس اونو حق شناسن په این گرایشو دارن سبومن بحث مولود وقتی که سالم دنیا میاد وقتی که ما میگیم که سالم به دنیا میاد مشرک نیست رسولان سالس هم اینچینی مسال میزنن بر یک شخص اینچینی ما من مولود لا يولد على الفطره فبواهي هو بدانه ينصرانه او يمجسانه درس صلى الله عليه وسلم نگفتن او يسلمانه او يمسلمانه نگفت کی مسلمانش هم میکنه انسانی کی دنیا میں یاد روی فطرت ہے یعنی وہ اسلام درس اسلام فطرتِ اسلام پدرانن کی یهودیش میکنن اونا میگن که اسلام نیست خالیه پدران هم که یهودیش میکنن نصرانیش میکنن یا مجوسیش میکنن همانطور که حیوان سالم میبینید به دنیا میاد سالمه؟ گوش بروده نیست؟ همینطور انسانی که به دنیا میاد گوشش میبرن این دلیل برعله هی شماست نه به شما به که اونای که الله اومدن استدال کرد بیگه انسان سالمه یعنی خالیه هست خیل سالمه یعنی کامله انسانی که به دنیا میاد یک مومن حقیقیه الله شناسه یعنی همونطور یک حیوانی به دنیا میاد سالمه انسانی که به دنیا میاد اعتقادش هم سالمه نمیتونه شرف به پذیر بود پرست باشی میتونه مثلا بود را به اگر پدران و مادران نگه که بری نداره نیاد بگید پای شاه فلانی و پای زیارت فلانی اگر پدران به ما نگه مادران نگن سلیم نباشه فران آیا بچهی ای که ادانیم میره به طرف این چیزها بله انسان میتونه خدا شناس باشه می خدا هست لیکه این شرک انحراف رسولان هسته به چه تشبیه میکنن؟ نگفت اسلام اسلام رو نیورد اولا دومن تشبیه کرد انسان سالمه یک انسان کامل و سالم لیکه چی؟ گوش بریده نقص ایجاد شده آیا اسلام ببخشید نقصه؟ یا کماله؟ اسلام کماله و این حدیث دلالت بر نقصه پس نقص برمیگردد به این سه چیز و اسلام شاملش نیست واضحه؟ این حدیث پس مفهومشو فهمشو که این سالم این چینین هست فهمشو اصلا کاملا نشطه بست چارو من همونطور که در بحث سابق گفتیم همونطور که بحث سابق گفتیم اگر قرار بود که این فطرت یه چیز خالی بود. خداون هیچ وقت در باب مدح نمیورد. خداون مدح میکنه فطرت. در باب مدح میاره. اینجا هم در باب مدحه. در باب مدح. مولودی که به دنیای میوت صالمه مدح. مدح یوزامه. مدح. مدح مولود صالمه. لیکن اونها هستن که خرابش میکنن. پس انسان یک چیز ممدوش هست یک چیز گرایش مثبتی در خودشتر نه گرایش منفی ما هستیم که منفیش میکنیم و گوش و چش بریدهش میکنیم پنجومن این که اینهایی که اومدن متبنی این شدن که فطرت یک چیز خلق خالی در نفس انسان هست اونهایی که چینین حرفی زدن حرفشون حرف قدریه هست حرفشون حرف قدریه هست قدریه میگه چی گفتن؟ گفتن خداوند نمیدونه که ما چه کار میکنیم از حال ما با خبر نیست فردا چه کار میکنیم امروز چه کار میکنیم خداوند اگر میدونسه پس ما را مجبور ساخته پس خداوند چون نباید ما را مجبور بسازه پس ما انسان پس از خداوند نمیدونه که ما انسان ها چیکار داریم میکنیم و قدری در, در اساس این حرفشون گفتن که شلاخت اسلام هم نظری هست غیر ممکنه که یک شخص بدون نظر و استدلال مسلمان بشه یکی از قواعد اشعریه و قدریه هست علی حتا که اشعریه در ذات خودشون جبری هستن حالا معتزله بیشتر اینچینگ گرایشی دارن معتزله بیشتر قدری هستن اصل اعتقادشون قدری هست میگن انسان برنامه بچه 14 ساله از مکلف شده در نزد معتزله باید این شخص اول نگرش بکنه خدا چیه، نمیاد حادث و محدث و فلان فلان بحثش قبلن اومد، در بحث نظر رسولان. باید این چنین باشه تا اینکه برسید به مؤمن، به ایمان. یعنی انسان در نفس خودش مؤمن نیست. این حرف اگر ما بگیم که انسان خالی هست، همین حرف, حرف, حرف قدری، هست. انسان هیچ ایمانی نداره، خدا را نمیشناسه، باید بیاد یک سری های فلسفی را طی بکنه چون خالی هست. باید بره طی بکنه تا اینکه برسه به خود خداوند یعنی نمیتونه خودش همونطوری در نفس خودش اختشاف این داشته باشه که خدایی هست شیش و اینکه گفتن اساس انسان سالبه و اساس اسلام بر حسب اغلبیته نه بر حسب اصل و اساس ما باشون مخالف ما من مولود و فطرت الله عموم یا خصوص یا عموم یا مطلب بحث به گفتن نا اینا اغلبه یعنی اکثر مؤمنان بر فطرتن آیا این آیه شما اینجوری میفهمید الناس الناس الناس آیا این مردم که فقط خداشناس هایه من مولود من اینا میگن اکثریت گفتن در گفتشون اگر قراره حالا یک از شبه, شبه آخریشون این بود اگر قراره که بچهی که به دنیا میاد ایمان شناس باشه خدا شناس باشه باید کافر اول مومن بشه باید مومن باشه تا این کافر بشه باید بلد از ایمانش کافر بشه و ما میبینید که بچه های کفار همه کافر همه شو کافر همشون مومن نبودن جواب این حرف درسته این درسته اگر حزارو مدد نمیدم مدام بهش بگن که علی خداس مسیح خداس خدانی خداست گوشش نمیبوره چشمشو نمیبوره درسته چرا عجیب اینه در لغت عربی در لغت عربی جذع مقطع الاطراف حسن قطع چشم و گوش بش میگن چرا رسول ما صلی الله علیه و گفت که چشم و گوش پدر و مادر چشم و گوش کور میکنن تعصبی بار میارن چشم و گوش لهم قلوب و لا یقین و دیگه قلب بسته میشه چون راه ورودی بسته شده راه ورود و فهم و بسته شده راه ورود چی هست؟ گوشه و چشمه چشم ببندی و لهم آذان و لا یسمعون بیها گوش دارن نمیشن نمیخوام بشنبن نه این کسا نمیشنبن چون میشنبن لا یسمعون بیها حق و تقدیم نمیش گوشترا میشه و خیلی چیزا میشه ولی حق را حاضر نیستن می با اینکه حق حق میدونن حقه نمیخوان به پذیرن خیلی مساله جالبی هست یعنی خیلی تشبیه جالب است پس اگر, اگر آن بچه ترک میشد رها میشد غیر ممکن بود که کفر رو میپذیرفت شر رو میپذیرفت اگر نه هیچ کی بنده ای نبود که مثلا بلفعل الان ما اختلاف دیناتو داریم یکی مسیحی هست میپرسه کی گاو رو میپرسه یکی بوته رو میپرسه درست چرا ما دو طرفی چون نیماده کسی گُرشششو چشمو میبوره چون نیماده پس هر بچون وقتی درست بود که پدر و مادر در خلق انسان دخالت نداشت پس پدر و مادران که انحراف اجازه دادن فابواهُ یهودان نه نسران هوی و مجسان پدران هستند که عوض میکنن پس این کر و گُرش کر و لال کر کور کردن فرزندان توسط مادرانه پروکور میکنه بقاطل همین هم همتونی گفتیم نگو که مسلمان میکنن چون مسلمان کمال بینایی و شنیدنه کمال منطق و آخرین آخرین رد مونه این که گفتشون فطرت مجرد یک طبعی هست طبعی در انسان خالی خیلی گفته فاصلی هست لازمش اینه که انسان با حیون فرقی نکنه انسان مثل حیوان میشه تشخیص نداره دیگه نمیتونه حق تشخیص بده اگر قراره که انسان حق رو نتونه تشخیص بده پس چرا پیانبران فرستاد؟ صد و بیس و فرستاد؟ فردا روز قیامت با میان بگیم نه ما قرآن رو نفهمیدیم سنت رو نفهمیدیم عوض داریم درسته یا نه؟ راحت میسیم جلوه به قدا حق ما نفهمیدیم همون حدیثی که قبلی داشتیم راحت بلکه خدا خواسته با اقامت حجت و فهم و درک و میل قلبی که در نفس انسان گذاشته اقامت حجت بکنه که بله حق اینه و اینو حق حق شناسی رو در نفس انسان گذاشته به خاطر همین یکی در حدیث داریم الاثم ما حط في النفس وكرهته ان اسم گناه چیه است که در نفس خودت احساس بکنی پس این چیزی هست که در نفس انسان هست و پدران و مادران هستن که این چیز را عوض میکنن و خداوند برای تجدیل این ایمان تجدیل این ایمان پیامبران را می تا این که به مردم بگوین پدرانتون و مادرانتون اشتباه کردن. این خلاصه بحث امروزمون. امروز که مشکل گیریداری دیگه درش. واضح شد؟ خب سبحانکه الان و حمده که سبحانکه و صفانکه و صفانکه و صلی محمد.